بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشندی مهربان تبت یداء بی لحب و تب بریده باوت هر دو دست عبو و مار برو باوت ما اغنا عنه لا رو و ما کسب هرگز مال و ثروت او و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید سصینرا تهبو با زودی آتشی می شود که دارای شعله فروزان است وامرأت و همچنین همسرش در حالی که هیزن به دوش می کشد میجیدها قبل من مسد با ترکتنش تنابی اثبیت خرماس